دیال کن داری چند اسلاید را پشت سر هم میبینی اینطوری خیلی بهتر است هر یک از اکسها یک زیرنویس طولانی هم دارد. سعی کن هم به جزیات اکسها دقت کنی هم زیرنویسها را بخوانی. اکسها داغ داغند یعنی همین الان از محلول جادوی ظهور بیرون آمدند و با گیره به نخ کتانی تاریکخانه آویزان شدند و خشک شدند و رفتند توی اسلاید عکاس این اکسها من نیستم افثانه ای ترین اکاس دنیاست که البته هنوز به دنیا نیامده چند عکس با چند نوشته انگاری تریای اوتل البرز و ساعت یک رب به هشت تنها مکان و زمانی است که هنرمند مجاز است درباره هنرش توضیح بدهد. اگر این توضیحات حذف شوند، اکثر ظاهرا زیبا به نظر برسند ولی ممکن است آنطور که مطلوب هنرمند افسانه ای است به یادماندنی از آب در نیایند. از آب که نه البته محلول جادویی ظهور. من خودم هر وقت فیلمی را با زیرنویس میبینم یا فیلم را از دست میدهم یا زیرنویس فیلم را. در مورد فیلم های آمریکایی مشکلی ندارم. ولی وای به حالم اگر فیلم اروپایی باشد آن وقت بیا و درستش کن با این پیرچشمی باید هزار بار بیشتر از چشمهایم کار بکشم تا بتوانم از فیلم سردر بیاورم فکرش را بکن دیدن صحنه و همزمان خواندن یک عالم زیرنویس نظرت در مورد یک سوئیت اختصاصی در طبقه هفتم جهنم چیست فیلم اروپایی با زیرنویس انگلیسی دقیقا زندگی در همین سوئیت است. بگذریم. دارم حاشیه میروم تا آماده ی قصه گفتن بشوم. تو نباید عکس های این اسلاید شو را از دست بدهی. درست؟ بعد از خروج تو از این کافتریا، عکس ها خود به خود در اسیدی اسیری حل میشوند و ازشان چیزی جز یک افسانه باقی نمیماند. افسان افسان ای, افسانه ای ترین اکاس دنیا و اسلایت های گم شدهش. کلکسیونر های شاخ هنری دنیا میلیون ها دلار برای یافتن رد از اسلایت ها جایزه گذاشتند. پس خیال کن که روی دیوار چوبی روبرویت پردهای بزرگ و سفید داختند و چراغ های کافهرییا را خاموش کردند و تریا هم یک صندلی برای تو گذاشتند تا عکس ها را، سر حوصله یکی یکی ببینی قصه مصور گفتن سخت است اما میدانم که تو شنونده خوبی هستی این نگاه گیج و مبهوت رو هم از من بردار نگاهت باید ترس گوینده را بریزد خودت که میدانی اول آخر هر قصهت بقیه جای قصه مهمتر است و چون وقت زیادی نداریم از وسطهای قصه سری رد میشوم و آنها را به عهده ذهن تو میگذارم عکس اول عکس یک رادیو ترانزیستوری قدیمی است تاریخ دقیق ساخت و نام سازنده رادیو معلوم نیست همین قدر میدانیم که پروفسوری مهربان و ژولیده و احتمالاً بینام این رادیو را اختراع کرده و در اداره ثبت اختراعات به ثبت رسانده این رادیو تکموج است و در حال حاضر تعداد کمی از آن باقی مانده ایستگاه این رادیو در محوته ای باز نزدیک تلکابین توچال است این ایستگاه را فقط رادیوهای این شکلی میتوانند بگیرند طول موج ایستگاه نه کجا است نه بلند نه متوسط فقط میشود گفت طول موجش خاص است یک طول موج سری برای رادیوهای سری خانه های سری این رادیو بیشتر با چشم شنوندگان کار دارد تا با گوش آنها جالب است نه این رادیو جای چشم و گوش را موقتا عوض می کند. مکانها را به آدمهای زنده تبدیل می کند و آنها را وا دارد پس از تماشای مکانها در آنها حرف بزنند. مکانهای تهران را باید مثل چشم خودت دوست داشته باشی تا چشم تهرانی که بار از خون تهرانی است با مکانهای تهرانی یکی بشود. مثلا پل حافظ یک پل نیست. بلکه پل حافظه است پس با حافظهت حرف بزن و با دارش کن تو را به یاد بیاورد هنوز نمی‌دانیم مجری این رادیو که توی ایستگاه رادیویی سریش توی توچال نشسته همان پروفسور جوریده مهربان است یا کسی دیگر من خودم یکی از شنوندگان پروا برنامه های این رادیو هستم همینطور هم تو ندا تو هم بلدی جای چشم ها و گوش ها و حتی دهانت را با هم عوض کنی و کاری کنی که چشمت حرف بزند و گوشت ببیند. تو هم تهرانی هستی ندا. غضیه به حرف زدن با مکانها ختم نمی شود. این رادیو برنامه صبح را با این جمله آغاز می کند. عزیز امروز با هر چیزی که دوست دارید حرف بزنید. آهای تو برو با شفرولتت حرف بزن. ندا؟ هاج و واج نگاهم میکند کاش میتوانستم بفهمم به چی فکر میکند زهر خانی این دفعه پرتقال را نازک و یک انداز پوست کندم نوار بلند پوست پرتغال از پوست سفید توی پرتغال آویزان شده از بچگی دوست داشتم پرهای پرتقال را همراه این پوست سفید بخورم شیرینی و گسی وقتی توی هم میروند افثانه ای ترین خوراکی دنیا متولد می شود. ندا به دنبالی دراز پوست پرتغال که یکی دو دقیقه دیگر گلی نارنجی و سفید می شود نگاه می کند. عکس اولت که حرف نداشت، فکر کنم تا خط تا آخر قصهت را خواندم. انگار من هم یکی از رادیوهای اسلایدی دارم. پس صدای رادیوت را بلند کن، یک راست می سر وقت آخر قصه. مکس آخر، دنکی شد سانچو پانزا، دو سایه سیاه در یک بوم سفید ولی این دوتا با های بادی نمی جنگیدند با شوالیه های خبیث واقعی می جنگند. با شوالیه های تاریکی، های سیاهی که چشمها را از کار میاندازند، این دوتا سربازهای روشناییند، سربازهای وفادار ملکه خاکستری دیف ها روی روشنایی های شهر پرده های زخیم سیاه بکشند و نیزه و شمشیر این دوتا برای دریدن این پرده هاست. دنکی شد دل سینه ای دارد که هیچ زنی به گرد پاش نمی رسد. سانچو نخ خپل از نخنگ، خنگ باهوش است و جوان و جا طلب. از آن اکاس هایی که به کمتر از دور دست ها رازی و میخواهند از بالای اورست، از دنیای پایین عکس بگیرند سانچو یعنی همین سایه سمت چپ دنکی شد میخواهد با کارهای متحبرانی آتیش نشان گری را از دستان ملکه خاکستری بگیرد سانچو عاشق سانچو فعلا پکر ملکه ما میخواهیم سرزمین مقدست را با نیزه های و با لنز های زوم و تلب و از شر رشباه سرگردان تاریکی بازداری کنیم. از پنجره به خیابان بزرگ مهر نگاه می کنم. خیابان روشن و خاموش می شود. ندا ساکت است ولی خیره به چشم های من نگاه می کند. کارگران نارنجی پوش می خواهند سطل سیاه بزرگ را به روی کامیون وصل کنند ولی شভ্রلت جلوشان را گرفته است. دوست داری برویم توی بالکن؟ نه، دارم به سانچو فکر میکنم زیاد فکر نکن قصه مصور را هم جدی نگیر مالی خوریای زود گذر بود قصه برحال قصه است. گل پرتقالیت خشنگ شده ته خوری هنوز چای مانده مانده یکم ولی دیگر کسی توی نیست برویم استرکت هات را هیچ وقت فراموش نمیکنم. من را میرسانی خانه؟ سرم را به علامت مثبت تکان میدم. نگهبان در شیشهی را برای من باز می کند. مرد سرمهی ای می آید. ببخشید یادتان رفت حساب کنید. با ندا می و همزمان معذرت می برمیگردیم بر گردیم توی تریا تا صورت حساب را به پردازیم. ندا پشت در شیشهی ای ایستاده و خیابان تاریک را دماشا می کند. برگشتن مسیررت کم طولانی بشود ایرادی ندارد دوست دارم از جلو باغ مجسمه رد بشویم به خاطر اسلایت ها اینجوری مسیرمان کوتاه هم می شود را رو می رویم بالا و بعد اتوبان چمران و خروجی ملاصدرا. را جان، جان باغ مجسمه شب و چراخ های زمینی دلم برایشان تنگ شده